داستان لغزش زبان در روستایی به رحمنی فقیر و کودن به نام هاریشارمان زندگی میکرد که نیاز مبرمی به کار و شغل داشت همچنین به سبب کردارهای نادرست در حیات پیشین خودش فرزندان بسیاری داشت یه روز همچنان که با خونوادش برای گرفتن صدقه این طرف و اون طرف سرگردان بود در راه به شهری رسید و به خدمت ارباب بسیار ثروتمندی به نام استهولاداتا در اومد. ارباب پسران او را به گاووانی و داشت و همسرش خدمتکاری می کرد و خودش نزدیک خانه می موند و پیغام ها رو می برد و می آورد. روزی عروسی دختر استهولاداتا شد. در اون عروسی خیشاوندان بیشماری حضور داشتند و انبوه جمعیت در اونجا گرد اومده بودند. هاری شارمان پیش خودش حساب میکرد که در این مراسم او خونوادش میتونن با خوردن گوشت و چیزای دیگه شکمی از ازا در بیارند. اما در حالی که این آرزو رو میکرد که ظاهراً هیچکس کس به یادشون نبود، بنابراین پس از اون که از یافتن غذا ناکام شد، یه شب به همسرش گفت خوردی و ناچیزی من در اینجا نتیجه فقر و حماغت همه. حال که ما از این قراره باید با توسل به کلک و نیرنگ وانمود کنم که زیرک و باهوشم تا خودم و شایسته ی توجه تا قرار بدم. هر وقت فرصتی پیش اومد تو باید بگی که من آدم دوانو با سوادی هستم. اینو گفت و بعد مطلب رو در ذهن خودش مرور کرد. و موقعی که همه در خواب بودند اسبی رو که داماد استهولاداتا سوار میشد، از خونه ارباب برد و اون رو جای دورتر بست و قایمش کرد صبح روز بعد خانواده داماد هر چی دنبال اسب گشتن پیداش نکردند پس زن هاریشارمان پیش استهولاداتا که از بدبختی پیش آمده اندوهگین بود و به دنبال اسب دزد می‌گشت رفت و بهش گفت شوهر من خیلی چیزا میدونه و در علومی مثل ستاره شناسی سررشته داره. اون اسب شما را براتون پیدا میکنه. چرا باهاش مشورت نمی کنید؟ وقتی استهولاداتا اینو شنید، هاری شارمان رو به حضور خودش فرا خوند. هاری شارمان گفت تا دیروز از نظر شما افتاده بودم اما امروز که اسب را دزدیدن به یاد من افتادین؟ استهولاداتا ازش دلجویی کرد و گفت ما را به خاطر این کوتاهی ببخش اما لطفاً به ما بگو چه کسی اسب ما را برده. بعد هاریشارمان وانمود کرد که داره خطوطی رو ردیابی میکنه و گفت: دزها افسر اسب رو در مرز جنوبی این منطقه بستند. اسب جایی ایستاده که پیدا نیست و تا پایان روز اونو نمیبرند بنابراین هرچه سریعتر برید و اونو بیارید اینو که شنیدن بلافاصله چند مرد شتابان رفتند و اسب رو پیدا کردند و آوردند. و علم هاریشارمان رو ستایش کردند. از اون بعد همه به هاریشارمان به عنوان یه آدم صاحب علم احترام میگذاشتند چون مورد احترام استهولاداتا بود. زندگی آسوده‌ای شروع کرد. روزها همچنان میگذشت که دوزی مقدار قابل ملاحظه‌ای طلا و جواهر و چیزهای دیگر از کاخ پادشاه دزدید. چون دزد پیدا نشد، شاه که به خردمندی شهرت داشت، هاریشارمان رو خیلی زود فراخوند. وقتی به حضورش رفت اونو در جریان قرار داد او سراسیمه و مسترب شد که چطور باید از اون سردر بیاره و برای تلف کردن وقت گفت فردا بهتون میگم او را در اتاقخوابی نزدیک پادشاه جا دادند و به دقت زیر نظر گرفتند اما بشنوید که دختر خدمتکاری در دربار شاه کار میکرد که اسمش جیهوا یعنی زبان بود جیهوا به کمک برادرش گنجینه رو از کاخ رو بوده بود. او خیلی نگران علم حاری شارمان بود. و برای اینکه سر در بیاره چه کاری از دست حاری شارمان برمیاد شبانه دم اتاقش رفت و گوشش رو به در بود. در اون لحظه حاری شارمان که در تنهایی داشت زبان خودش رو ملامت میکرد که درباره دانش ادعایش لاف زده بود با خودش گفت ای زبان، دیدی که از روی هرس و تمه و به خاطر هوا و حوص خودتو چکار کردی؟ ای بد بخت پست، حالا باید همینجا زندانی بشی. وقتی که دختر خدمتکار جی هوا اینو شنید، وحشت زده فکر کرد که این شخص دونا پیداش کرده. بنابراین با هیله به داخل اتاقش رفت و به پاش افتاد و به اون به اصطلاح مرد حکیم گفت نه برحمن من همون جیهو یا زبانی هستم که تو فهمیدی گنجینه رو دزدیده پولا رو در باقی پشت همین ساختمون زیر یه درخت انار چال کردم بنابراین از من حمایت کن و این قطعه طلا رو که در دست منه بگیر هاری شارمان که اینو شنید با نخوت تمام گفت برو من تمامی گذشته آینده و همچنین حال رو میدونم با این همه تو رو به دست مجازات نمیسپرم. چرا که خودت به نحوی رقتبار پشت من اومدی و پناه خواستی اما بید هرچه رو که قایم کردی به من برگردونی. دختر خدمتکار فورا اونچ رو که گفت پذیرفت و خودحافظی کرد. سپس هاریشارمان شارمان با تعجب به خودش گفت چه اقبال مساعدی که فقط از راه یه توهم صرف کاری که ناممکن بود انجام شد. برای همین وقتی که در اینجا بدبختی به سرغم اومده بود که کارها ناخواسته و نامنتظر به سود من درست شد. جی هوای دوز کنار من حضور داره و من دارم زبان خودم رو ملامت میکنم. به نظر میاد که احساس گناه مجرم کارهای بعدش رو آشکار میکنه. غرق در همین خیالات شب رو تک و تنها به خوشی گذروند. صبح روز بعد هاری شارمان با بهنمایش گذاشتن حکمتی به خود بسته و ادعایی شاه را به باغ برد و گنجینه رو که در اونجا چال شده بود در آورد اما به او گفت که دوز فرار کرده. و بخشی از گنج رو با خودش برده. شاه با دیدن این صحنه خوشحال شد و دستور داد که چندین پارچه دهگده بهش بدن. بعد یه وزیر در گوش شاه زمزمه کرد او این دانش و حکمت رو که آدمیان بدون درس خوندن نمیتونن به دست بیارن از کجا آورده. بیشک با همدست شدن با دار و دستی دزدان و با رندی داره این زندگی رو میگذرونه. بذارید یه بار دیگه به نیرنگی اونو آزمایش کنیم. تصادفاً کوزه بزرگی برای شاه آورده بودند که دوروبرشو پوشونده بودند و یک وزق داخلش بود. پس به هاری شارمان گفتند اگه بتونی سردر بیاری که داخل این کوزه چیه امروز یه پاداش بسیار بزرگ بهت میدیم. هاری شارمان وقتی اینو شنید با خودش فکر کرد که ساعت مرگش فرا رسیده. اما لقب وزغ رو که پدرش در کودکی از سر شوخی بهش داده بود به یاد آورد و با ناله و زاری از وضعیت خودش گفت واقعا حقیقت داره ای وزغ این کوزه به صورتی غیر در اینجا پیدا شده تا تو رو با این همه ضعف و ناتوانی نابود کنه وقتی حضور اینو شنیدند تصور کردند که مقصود او چیزیه که داخل کوزه است فریاد زدند آفرین بر تو حکیم بزرگوار بالاخره وزق رو پیدا کردی؟ بعد شاه از کار هاریشارمان خوشش اومد و تصور کرد که او بینش خارقلاده ای داره. بنابراین چند پارچه ده، همراه با طلا چند تا و چتر به عنوان نماد قدرت بهش داد و در کوتاه مدت حاری یه امیرزاده درست حسابی شد. قصه ما تمام شد. जोत मेरे में तो तो